به عظم توبه سهر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم؟ سخن درست بگویم نمیتوانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم چه قنچه بالا به خندان به یاد مجلس شاه پیاله گیرم و از شوق جامعه باره کنم به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم ترب کناره کنم زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم گدای میکده هم لیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم مرا که نیست ره و رسم لغم پرهیزی چرا ملامت رند شراب خاره کنم به تخت گل به نشانم بطی چو سلطانی ز سنبل و سمنش ساز دوغ و کنم ز باد خوردن پنهان ملول شد حافظ به بانگ بربت و نی رازش آشکاره کنم